بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين والاه وصحبه اجمعین اما بعد روز جمعه آداب احکامی داره با توجه به احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست حادیث سیادت الان ما سعی میکنیم که ان شاء الله مروری دور رون احادیث داشته باشیم حالا خصوصا فضیلت های روز جمعه انسان وقتی که فضیلت و مقام و شرف یک چیز رو ندونه قدرش رو نمیدونه وقتی که مقام و شرفش دونه ارزشش رو دونه اونجا هست که اون شخص نسبت به اون چیز قد شناس میشه اولا قبل از این که وارد بشیم به آداب و احکام روز جمعه اول آداب احکام کلمات کلماتی یاسن خیلی واضحه یک سری احکام یک سری آداب سنت ها هست مستحبا هست که انشالله بهش خواهیم پرداخت روز جمعه گفته شده روز جمعه به خاطر اجتماعش به خاطر جمعش در ادبیات قدیم ایران روز جمعه که قبل از شنبه قرار میگیره عادی نه معروفه روزی هست که روز عید مسلمان‌ها هست روز جمعه درش خطبه جمعه قرار میگیره و اجتماع تمامی مسلمان‌ها از مساجد مختلف یک مجلس در اجتماع در آن جمع روز شنبه یهودیان جمع میشن و روز یک شنبه نصره برای آن تجمعشون عبادتشون در کلیسا. رسول الله صلی الله علیه و در شأن روز جمعه میفرماین خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة خیر یوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه ادخل الجنه و فيه اخرج منها. بهتر روز روز جمعه. الاتش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه بهتر روزی هست که در اون خورشید بیرون اومده. اون روز جمعه هست آدم در اون روز آفریده شده و یکی از علت‌های نامگذاری جمعه به این نام خلق و جمع شدن آدمه در روایت یه لابش اشاره شده که در این روز آدم علیه السلام جلب دست وده فرشتگان از روی زمین خاک قرمز و سفید و سیاه بلند بکنن بیارم به نزش و آدم در اون روز جمع میشه از اون خاک های مختلف و آدم آفریده میشه در اون روز از اون خاک هایی که به نزد الله جل ال اووردن خلق آدم فی خلق آدم و فیه خلال الجنه در اون روز وارد بهش میشه و فیه اوخل جمعه و در اون روز و ال او رو از بهش خارج میکنه خب این بحث فضیلت روز جمعه و یکی از علت نامگذاری روز جمعه به جمعه که معانی دیگری هم یاد شده بر اینکه چرا نامش روز جمعه گذاشته شده گفته شده به خاطر اون نماز جمعه هست که مردم اجتماع درش پیدا میکنن و جمع میشن و گفته شده به خاطر اون الفتی هست که مسلمان ها در اون روز کنار همدیگر پیدا میکنن و و جمع میشن از همون جمع و اجتماع و مجموع میاد جمعه هست مجموعه مجموعه‌ای از مردم گروهی از مردم جمعی از مردم جمع میشن کنار همدیگر و در اون روز همین میشن برادر در اون روز، همین میشن مسلمانی که کینه و کدورتی بین اونها نیست این شعن این روز هست و مقامی که این روز داره یک از مسائلی که از جمله احکام روز جمعه یاد میشه بحث فرض بودن نماز در روز جمعه هست فرض بودن حضور در جمعه که اتفاق علمایه طرف و توصیح الله و امر الله جل وعلا در قرآن از صرف دیگر يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع خريدوا فروش معاملها مينو حرام مشه بخطر الجمعة وأرزش جمعة إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة ندا زادش وبرجو عبوات بشتابي فسعوا إلى ذكر الله خب الله جل وعلا وقت كي بيكشي زد السور ميدة وأمن مكون كي بواجبة حتمية برهر فرد شانيشي أهمية أون عبادات أهمية وأرزش أون شعيره هلا من فقط یک گوشه اشاره میکنم به بعضی از حادیث که در شعن روز جمعه هست در کنارش عقوبت های هم چر گذاشته بر کسانی که تخلف میکنن از جمعه هر دوتا باید بهش اشاره بشه فضیلت اون کسی که میاد و عقوبت اون کسی که نمیاد اما در شعن کسانی که میان پاداشایی که گذاشته شده حادیث زیاده من خیلی عاشو در ضمن بحثش خواهم کرد در ضمن خواهد اومد اونجایی که بحث سنتها هست کسی که خودشو خوشبو بکنه قسط بزنه بیاد به اندازه یک سال قیامش و روزه‌اش براش پاداش نوشته میشه حالا این از ها و از ثواب‌های گفته آمادگی برای روز جمعه حالا غیر از اون بحث قربانی اونا انشالله بعدم بهش اشاره خواهم کرد الان اون حادیسی که طولانی هست که یک قسمتی از اون اشاره خواهم کرد ك درشانو فازيلته روز الجمعة ومدى. أولا الحديث كشريك عادين. حديث كما مسلم روايات مكون خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ينك گفت بهتني روز نزل الله جل وعلا روز الجمعة. الجمعة حديث ومن حديث الفازيلته روز الجمعة. حديث أبو مساع شعريهس. ألباني در تاريخ وتاريخ حديث الشسانة ودهاش تاسيش مكون مي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يبعث الأيام يوم القيام على هيئتها. ويبعث يوم الجمعة الزهراء منيرة. أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضة وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد الا المؤذنون المحتسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى روزها بر هيئت و شکلیشان روز قیامت هشت میشن روز جمعه در میان ما بقی روزها هشت میشه همچون یک گلی نورانی درخشان ظاهر میشه در اون روز ما بین دیگر روزها ما یه چیزی که هست قبلا ما در شرح عدم مفرد مسئله بیان کردیم بحث رحم رو کردیم که وقتی الله را می میاد دست به دامن الله میشه میگه و الله توصیه به من داشته باش مردم براقت نکنن و الی آخر اعمال انسان درسته که در ظاهر طبقه اون بفتهی علمه منطق، فلسفه، کلام که اینها عرزن نمیدونم اینها چطور میشه یک جس بشن، جوهر بشن، چطور حرف بزنن و الی آخر الله جل و علا قادر بر هر کاری است این که چگونه روز بیاد سخن بگه یا رحم سخن بگه یا روز جمعه در اون روز شکوفایی داشته باشه همچون گلی درخشان روشن نورانی چطور خواهد روز قیامت در در مقابل دیگر روزها الله اعلم رسول الله صلی الله علیه و سبحانه گفتن و سخنانش حقه که اهل جمعه او را در بر گرفتند یعنی روز جمعه در میان دیگر روزها درخشان خواهد بود و اونهایی که حق این روز را پاس داشتند در زیر پرتو و اون نورند در اون روز. روز قیامت روز جمعه درخشان شده همچون گلی شکوفا شده و اهل جمعه رو در گرفته مؤمنانی که اهل جمعه بوده همانند در اروسی که به حجلش برده میشه یعنی مزینه اون روز و با اهلش همه درخشان هم درخشان هم با نور اون جمعه برانها می درخشد و یبعث و یوم الجمعه زهرا منیرا مثل یک گلی شكوفات الرقشانة أهلها يحفون بها كالعروسي تهدا إلى كريمها مثل عروسي كه برده مشه بالدامات تحويل داده تضيء لهم روشن ميكون هارو يمشون في ضوءها درزيرة زير روشنوية هن حركات ميكونن زير نورش ألوانهم كالثلج بياضه رنگان هنهار بسفيده برفه و ريحهم يستعو كالمسك بوئي هنهارو أهل جمعه هل مؤمنين قدر جمعه ردون بوی اونها مثل مشکه عطر که معروفه از اون عطر گرامبه هایی که از عرق خاصی که در گردن آهو هست گرفته میشه یک آهوی خاصی هست در زیر گردنش اون عرق خاصی و اون یک چربی خاصی هست که بوی خاصی داره یک از گرامبه ترین عطرهای خوشبوب هست اینجا مشکه و اونجا هم ما در اون عطری که از و یا از حود گرفته میشه به عنوان عنبر یاد میشه این دو تا عطریه گرانبها هستن خب حالا اینجا بوی اونها اینجوری میشه خوشبو یخودو فی جبال الکافور یعنی آغشته میکنه باقی هایی از اون بوی خوب کافور نه کافور دنیوی کافور بهشتی کافور دیگه است ینظر الیه و جنون نگاهشو میکنن ما یطرقونه تعجب در شگفتن از شگفتی اینها که پایان پذیر نیست. شگفتی که اینها دارن از زیبایی، از روشنهایی انتهایی نداره. حتی یدخلو الجنه ها اینکه وارد بهش بشن لا یخالتوم احدون الا المؤذنون المحتسمنی کسی هست. با اینا شریک نمیشه مگر اونهایی که مؤذن بودن از آن میگفتن برای کسب سباب برای اینکه الله جلب علا عجر پاداششون بده در روز قیام بدنی. همراه اون مؤمنانی که قدر روز جمعه رو دونستن مواذنین هم همراه اونا هست. یک فضیلت خاصی هست برای اونهایی که در حقیقت جمعه و حقش رو ادا بکنن. حق این بهترین روزی که الله جل و علا از میان روزها انتخاب کرده. حق اون روزی که از اون 7 روز الله جل و علا بهترین روز رو قرار داده. از جمله احادیثی که داریم، بازم البانی در ترغيب وترغيب حديث الشيسانة وعلى شر يكون حديث بن Anas Ibn Walik وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا أتاني جبريل وفي كفه مرعات بيضاء فيها نكتة سوداء يكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا جبريل ممادة الزمن وجمعرها مجون أيني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضم يكون سفيد يكي نقطة سياه بس تومبود فقلت ما هذه يا جبريل چيني قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون, لتكون لكم عيدا ولقومك من بعدك إن روز الجمعات الله جل وعلا بها شما عارزك هذا كعيده باش بريته وقومه وعام شنك أساني كباده شما تكون أنت الأول واليهود والنسارة تبع من بعدك تو پیشواهسی و یهود بپوش سرت و ناسال بپوش سرت و عاسام. خُلْتُم فيها. قال لَكُمْ فيها خَيْرٌ كَثِيرٌ. در این روز برای ما چی خرار داده شده؟ خیر پاداش بسیاری لَكُمْ فيها ساعة. اسفزیلاتور یاد میکنم رسول الله صلی الله عليه وسلم لَكُمْ فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير. هو له قسم أعطاه الله او ليس له بقسم إلا ذخرا له ما من در اون روز چیزی از الله جل وعلا نمیخواید مگر الله بهش عطا بکنه بده غیر از اون پاداشی که براش بگذاره برای روز قیامتش او تحوزا فیها من شر من شری ما هو مكتوب عليه الا اعاذَهُ الله من اعظام و از چیزی به الله پناه مگر الله از بالاتر و بیشتر از اون بهش پناه بده فید کن یوم الجمعه نزلت بک من العلیین لا کرسیته اخرالون حدیثی که هست در شان نزول الله جل وعلا اون روز قیامت بیان میشه حالا اینجا فقط بحث شاهده این حدیث در بحث سجابت دعا در این روز که بهش اشاره شده هرچنکه با الفاظ دیگری هم روایت شده پس از فضیلت های این روز اعتنای خاص الله جل و برای کسانی که قنیمت به بشمورن روز جمعه برای دعا کردن الله جل و در اون ساعتی قرار داده که دعای آن بنده سجابت بکنه اگر به طلب الله بهتر از اون خیر بهش بده و اگر از شری پناه بره بهتر از اون شرم بو او پناه بده از اون شرها از انواع شری که وجود داره از بدتر از اون شری که از الله خواسته که او رو پناه بده بدتر از اونها الله جل وعلا او رو پناه بده یعنی دعاش اجابت میشه دعاش اجابت میشه از الله جل علی الله ردش نمیکنه این عملیات خاص الله هست که داده به این روز و ما باید قدرشو بدون از اولى احادیثی که البانی هم داشت میکنه در سلسله صحیحه اونجا جو تلقی بوداری اون جو سلسله صحیح حدیث 1502 حدیث ابوبکر رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و, تارق و, تارق و دو دو. لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة لا تطلع الشمس هیچ وقت خورشید بیرون نمیاد و نیومده و نه غروب کرده بر روزی بهتر از روز جمعه یعنی بهترین روز شما نازل الله جل روز جمعه است روزی که خورشید برای اون طلوع میکنه و غروب میکنه و ما من دابت الا تفزع لیوم الجمعه هیچ حیبون هم نیست مگر اینکه حراس داره ترس داره وحشت داره از روز جمعه چرا چون قیامت در روز جمعه برپا میشه چون قیامت در روز جمعه برپا میشه الا هذين الثقلين مگر جوی تاسف داره برای جن انس الا هذین الثقلين من الجن على كل باب من ابواب المسجد ملائکه آن یکتبان الاول الاول بعد الرسول اشاره میکنن که در روز جمعه دو تا بر روی درهای مسجد اول به اول اسماء و نام‌های اشخاصی که وارد مسجد میشن می‌نمییسن و ک قدم بدن و قدم بقره یکی همچون چطوری قربانی کرده پاداش براش نوشته میشه دیگری همچون قاوی و ک رجلا قدم شایک گوسفندی و قدم طاره یک پرنده ای و ک رجلا قدم و کسی که تخم مرغی درو الله جل و علا داده قعد الامام طویته الصحف اگر امام بیاد بالا من بر بشینه دیگه فرشان در اون پرونده ها رو می بهدن در اون دفترهای خودشون رو می بندن و میان به گوش دادن منشستن در حلقه ایزه خب اینا هر که دوباره خواهد اومد در ضمن بحث در احادیث دیگر هم به این موازی اشاره شده که انشالله بهش خواهیم پرداخت اینا پادشاه ها بود اینا ثواب ها بود که الله جل و علا گذاشته بود برای کسانی که در روز جمعه بشینن برای کسان حالا دعا عدد چه وقتی چه ساعتی ان شاء الله به خواهیم کرد در چه ساعتی به اجابت تره که انسان بشینه وقت خودش رو بده بهش خب اما هایی که در نظر گرفته شده برای کسانی که تخلف بکنن از جمعه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند لا ينتهينا اقوا عن او ليختمننا الله على قلوبهم ثم لا من اقوامی استر کردن جمعه دست میکشن یا اینکه الله جلو حالا قلبشون رو پلوم میکنه میبنده بسته میشه قلبشون مثل بطری که درش بسته میشه همون چیزی که الله جلو حالا در قرآن هم بهش اشاره میکنه از زیغ و انحراف فصاق و منافقین و کفار زیغشون انحرافشون از قبول حق فلما ازاغو ازاغ الله قلوبه وقتی که اونها دوچار زیغ شدن نخواستن هدایت بشن نخواستن رهنمود بشن الله جل وعلا سلبته في غز شوميكه چون خودشو نخواسته کسی که جمعه نیاد نخواسته که هدایت بشه نخواسته که مشمول این فضیلت بشه فضیلتی که الله گذاشته اجر و پاداشه گذاشته برای جمعه کسی که نخواهد خودش خودشون محروم کرده الله نخواسته که محروم بشه خودش نخواسته خودش قدم بر نزد و این خط این بسته شدن قلب که عقوبت از الله جل وعلا بر کسی که تخلف بکنه که عقوبته یک عقوبت که سبب میشه شخص جز غافلین بشه جز منافقین بشه اینجا در این حدیث اشاره شده نه من الغافلین در قلبش بس میشه از جمله کسانی قرار میگیره که غفلت زده غافلا از الله جل و از روز قیامت حالا اینجا به غفلت اشاره شده جایی دیگر به نفاق اشاره شده الله جل و علا در قران میگه ولا تطعم من اغفلنا قلبه اند و طببر هوا هو كان امر فردا وا من اغفل قلبه. پوی نکن. از کسی که قلبش از ما غافل شده اهل ایمان نیست اهل نمازی نیست اهل جمعه نیست. از اونها پوی نکن با نشین همسو هم خوب آنها نباشه. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا کسی که ذکر غافله باش نشین حس بخوا نداشته باش و طببر هوا اون شخصی که پوی از هوای نفسش کرده. بعد الله جلاله چی میگه و کان امره فرطا امرش فرطه یعنی زایع و گمراه اون کسی که یعنی ازباب عقوبت نکنی اون کسی که غافل شد از الله اللہ جلاله عقوبت میشه به چی؟ به گمراهی چون شخصی که سالیان سال درس دینی میخونه بعد طلب علم شرها میکنه خوندن تفسیر خوندن حدیث اکتفاق میکنه به اون چیزی که خونده این شخص عقوبت میشه به چی عقوبت میشه؟ و كان امره فرطا راه دیگه نمیتونه پیدا بکنه میشه گمراه راهش کیه راهش ابلیس صفطان مشروب خوران و اهل غیبت اهل دروغ اهل نمامی و اهل فسق و فجور و الی آخر این شخصی هدایت نمیشه سلب توفیق میشه یاد داشته باشید دیگه این قسمت از آیه جلو چش خودمون بذارید فلما زاغو ازاغ الله قلوبم زیغه وقتی که انسان از الله جل و علا قفل بشن، بختیک اهمیت ندید به زیکره الله جل و علاو بعبادت، اهمیت ندید به شعاره الله جل و علاو بدنی الله، فلب ما ازاقو، بختیک دشواره زیغ شدن از عبادات و طاعت، ازاق الله قلوب خو، قلب از الله جل و گرفته میشه یعنی قلبشون دیگه رو به طرف الله نمیاد، قلبشون رو به تلاف دنیاست، علمی میکنه به دنیا ما میشه دشواره زیغ میشه از الله جل و که عمل نباشه وقتی که پایبندی نباشه روی دین باطره هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفربادرو بالاعمال فتن فتن قلیالی مظلمه و كما قال عيسى و سلام بشته بسی عمل عمل بکنید قبل از اینکه فتن ها بیاد فتن های تاریک مثل شب تاریک هیچ چیزی درش پیدا نمیشه آدم گم میشه راهشو گم میکنه زیق گمراهیه به اینجا اشاره شده بگین گمراهی ثم لیکننا من الغافلین غافل میشه این غفلت سبب میشه که عمون عقوباتي الله دار القرآن جوزه شيء وكان أمره فروطه تود شارجهم رهيب الشيء والراهته نيابي راه بهشت تراه بولا سراتد دار نيابي الله جل وعلا إن عقوبات رياض مكونة برقومه يهودنا صاروا ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم أشدة ثبتة ولو أنهم فعلوا ما يعرضون بقدر انجام جومي دون الموعزات روز جمع روز الموعزات الا میاد انشاءالله داره ضمن احادیس به اشاره خواهد شد روز جمعه روز موعظه است اون خطیب گناهکار میشه اگر موعظه نده الا موعظه چی خواهد اومد و اون کسی که موعظه ام گوش فرانه ده گناهکاره اون شخص هم قلبش بسته میشه جز غافلین میشه جز منافقین میشه خواهد اومد قلب که بسته شد قلبت با اون غفلتت سبب میشه که تو, تو تبدیل بشه به یک منافق توجیهی که بعضی از بخان انقدر سخت گرفتن گفتن که اگر شخص سه جمعه نماز جمعه رو ترک بکنه اون شخص زنش تلاخه چون منافقه هست که دوچار نفاق اکبر شده و آخر از اون عقوبت که در کتابای فقی یاد چوده هر هرچن گفتم الان این یک ایک مبحثی فقی هست ما بحثمون آده بحکام روز جمعه هست بحث ردت و بحث نفاقی نیست بلی لا يجب أن ترسل عقوبات، العقوبات هذه العقوبات الشعر قزشته رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرمو يان من ترك ثلاثة جمع تهاونا، من ترك ثلاثة جمع سجن عكسي أسباب سهل انقاري بيخيالي رهاب كونه تهاوناً بها طبع الله على قلبه الله قلبش مي بانده قلبش رأز شناخت حقيقت مي بانده نمزره كدق حق وردش بشي راه حق قلبش بسي بشي بفلق بشي قلبش از دریابی نور اسلام نور حق نور حقیقت بسته میشه تاریک میشه عقباتی که الله گذاشته برای کسی که غافل از و رامشین در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان شنیده دار صلی بیهقی علیه و سلم تصحیح <تصفيق> حقیم در و صحیح ترغیب و تاریخ حدیث هفته سیپای میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم من سمع نداه یوم الجمعة فلم یادی کسی دادای روز جمعه رو بشنابه نیاد ثم سمعه فلم يأتيه ثم سمعه ولم يأتيه بشنا بنيد طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق وجعل قلبه قلب منافق در طبع الله على قلب قلبه شو الله مي بعنده مش قلب منافق إنه عقبات سخط التخلوفين عز جمع بقفتهم جش زادو ترافس جش زادو ترافس و اون معمومی که اقتدا با خطیب میکنه با میکنه گوش به هر دو طرف گوش به دو طرف از چه از این که من مأمورم به این که و بشنوم وعز بشم بیاد آخرت بیفتم من بیاد آخرت بیفتم اگر من دنبال رفع غفلت از خودم نشدم من به عنوان معموم من مسئولم من خودم از الله غافل کردم دور شدم از الله و الى و از اون طرف دیگرم خطیبی که اهمیت نمیده به موعزه به روز آخره اون خطیبم مسئوله که حق اونها را ضایع کرده حق اون معمومین حق اون کسانی که زیر منبرشش از سن را ضایع کرده دو طرف باید اهمیت بدن و سعی و تلاش داشته باشن برای رفع غفلت از خودشون من و شما اگر دستور داده شدیم که اول وقت در جنه بیاییم بعد خطبه رو گوش بدیم و بعد بازی نکنیم فلان نکنیم با فرش بازی نکنیم با سنگ بازی نکنیم برای چیه؟ برای اینکه اون موعظه اون سخنانی که از باب هشدار و تذکر به ما داده میشه در ما اثر داشته باشه ما باید دنبال این باشیم یعنی هر جمعه باید دنبال این باشیم که اون چیزیا دریابیم که برای روز آخرتمون به درد من بخوره اگر ما دنبال آخرتمون نباشیم دنبال اون موعظه‌ای که به درد آخرتمون بخوره اگر دنبال آخرتمون نشیم میشیم چی غافلین شدیم غافلین سه جمعه سر هم رفیق میشیم چی منافق. دیگه بعد شکایت نکنیم گله نکنیم ما که ما لذت نماز رو نمیچشیم ما نمیدونیم چی خوندیم چی شد نمازمون سلام دادیم اومدیم خوندیم رفتیم چی شد چی نشد دیگه بعد گله‌ای نکن گله‌ای نکن چون تو موعظه نشدیم. چون تو دنبال وعظ و ارشاد نبودی دنبال حرفای الله جل و علا نبودی الله چی ازت خواسته از اج از بادا چه چی چیزایی ازت نخواسته عقوبتایی که برات گذاشته خب انسان بدونه تا اینکه برحذر باشه یکی از احکامی که بهش اشاره میشه برای روز جمعه یک قسمتش ما گفتیم اینکه فرز عینه بر هر شخص اجماع و فرمودی الله و در سوره الله جللل در سوره جمعه به رفتن روز جمعه و حضور در نماز جمعه یک این قسمتش اینه یک این قسمتش که در کتاب فقی بحثش میکنن اینکه عددش با چه عدد جمعه شکل میگیره و اون جمعه قابل قبول میشه بعضی گفتن چل نفر حدیثی که استناد بشده حدیث صحیح نیست بعضی گفتن ده، بعضی گفتن دوازه، بعضی گفتن سه نفر چون سه نفر حتی قل جمعه و ایه هم همینه چون رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم میفرماند حدیث سیح ما من ثلاثه تن في ركبه و لبته من لا تقام فيهم الصلاوات الا وقد السحود عليها مشرقا سن فرنیس کن ما از جماعات بين آنها بارونامیش مگر اینکه شیطان بر اونها مسخر میشه چیر میشه بر اونها فعليكم بالجمع فهنما ياكل و من الغام القاسية بس بچه نماز کن چون گرگ که همو شیطانه از گسفن از جالجداش شده میخوره از کی وقتش جمع شروع میشه جمهور عائم غیر از حنبلی مذهب ها بر اینن که وقت جمعه بعد از زوال همون وقت نماز ظهر حنبلی ها میگن که نه از وقت نماز ضحا شروع میشه و الی آخر ال حادیثی است که بهش اشاره میکنن در بحث اینکه ما منصرف میشودیم از نماز جمعه و هنوز سایه ها طولانی نشودن الی آخر که این نشانه کوتاهی خطبه میده نه نشانه اینکه در وقت ضحا و نماز برپا شده و صحیح اینه که نماز جمعه وقتش وقت نماز ظهر به هنگام اذان ظهر باید اذان داده بشه و اون لحظه باید امام بر سر منبر بیسته اما اینکه نیم ساعت یک ساعت به تاخیر انداخته بشه این خلاف حدی رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف سنت و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته خبر داده از اینکه عمرها حکام شیوخ علمای خوان اومد نماز را به تاخیر مندازن سیکونو عليكم ورا يؤخرون اخرون السلا نماز وقت نماز مشخصه وقت نماز طبق قول جمهور ایم مالکی ها شافعی ها و حنفی ها وقت نماز جمعه کیه؟ وقت نماز صبح. وقت زوال هم موقعی که وقت نماز زور هم موقع نه کم نه عقب نه جلوش این وقتی هست که شعر در نظر گرفته برای عدای این نماز امام ترمزی میگه و الذي اجمع عليه أكثر اهل حلل العلم ان ن وقت الجمعذا زالت الشمس که وقت اجماع اج ال برینه هرچ که جمعه میگه أكثر جمع اتفاق بیشتر که اتفاق تمامی اهل نه بیشترحل برینه که که وقت جمعه وقت زوال خورشید وقت خورشید و سط سال رس مثل وقت نماز زورر. نماز جمعه واجبه بر هر مسلمان جز چند نفریک. استثناء السن در ناس الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرماية رسول الله نبي داود صحيح ماس الجمعة حق واجب على كل مسلم جمعة بر هر فرد مسلم واجب في جماعة در جماعات إلا أربع مگر استثناء شنان چهار نفر عبد مملوك برده در زیر ملك کسی هست کسی مالکش او امرأ زن او صبي بچه او مريض و کسی که مريض معذور از حضور در ن هرچند که پنجومی هم هست مسافر که به اشاره در حدیث دیگر رسول الله صلی علیه و وسلم میفهمند لیسه على مسافر جمعه مسافر جمعه نداره مسافر جمعه نداره نهی که جمعه ازش قابل قبول نیست مثلا ایک مسئله هست که بین فقه ها درش اختلاف هست اگر فردی مسافره من رفتم از اینجا به شهر دیگر مسافره من مسافر اگر اونجا خود بخوندم آیا خود به من من میتونم اونجا نمازم و بنوان نیت نماز جمعه بخونم حنابله میگن نه چون رسول الله سلام فهمده لیسه علی مسافر جمعه مسافر جمعه ندار نفی اصلا میگرن فلیکن جمه رأم حنافی ها و شافعی ها و مالکی ها میگن که نه نفی اصلی از نفی کماله مثل اون چیزی که در مباحث ایمان ازش یاد میکنن لا یزنی زنی حین یزنی و هوا مؤمن یا اون حادیثی که اومده بسه فرمودید اساسا من غشنا فلیسا این فلیسا من چیه؟ از نیست از ما نیست نیستن کافره یعنی نفی اصل ایمان ازش شده یا کمال ایمان صحیح اینه یعنی که کماله و اینجا هم همینه بحث کماله بحث اصلیست نیست مثلا بفهم من که مسافر اگر خود بخوندم نزد جمهور ائمه خود به صحیحه و اون نمازم که به نیت جمعه خونده بشه صحیحه و میشه بعد از اون که من که مسافرم نماز عصر رو با جمع بندم ولی نزد حنابلله نه شيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول مش جنب بس بين الجمعه ومناظره يكاز العلته عشان امين حديث ليس على مسافر الجمعه ولي صحيح اني كطبقته جمهور ائمه مش بين الجمعه وعص جنب است ان حديث ليس على مسافر الجمعه تبراني روایت کرده در اسنادش عبد الله بن نافع است ضعيفه ولكن شواهدی داره تقویتش میکنه و خیلی از علما تحسینش کردن خب مساله بعدی حکم بعدی روز جمعه است. خودبرو من هن رسیدم. اومدم به نماز رسیدم. آیا فرق میکنه من رکوع رکعت اول یا دوم یا هیچ کدوم از اینها نرسم؟ مثلا رسیدم امام در تشهوده. آیا فرق میکنه اگر رکوع را در یا نیابم رکوع آخری رکعت دوم؟ آیا فرق میکنه یا نه؟ اون چیزی که در فقه هست در گفته جمهور ائمه مالکی ها و شافی ها و حنبلی ها با یک رکعت با یک رکوع در یافتن روز جمعه؟ نماز جمعه رو دریافتی. نماز جمعه رو دو رکعت میخونی ولی اگر رکوعی را در نیافتی، رسید امام در تحیات بود. تو باید نماز چند رکعت بخونی؟ 4 رکعت بخونی و این نس حدیث داریم از رسول الله صلی الله علیه و آله که می‌فرمایند، چونش در بخاری من ادراک رکعه من الصلاه فقد ركصي قسمه ولو بتور عموما ولی خوب خاصش حدیث ابن مسعود داری، میگه من ادراک الجمعه رکعه فليضف اليها اخرى. اگر جمعه یک رکعت رسید یک رکعت هم ماذو رکوع فلیوظف الیها اخرى یک رکعت دیگر اضافه بکنه و منفعت الرکعتان فلیصلی اربعه مثلا نیست کسی که دو تا رکوع نرسید دو رکعت نرسید یعنی تحیات رسید پس چند رکعت بخونه چهار رکعت این استدلال کیه استدلال جمهور ائمه ماعدا احناف ماعدا احناف میگن اگر قسمتی از نماز در بیابی تو نماز جمعه رو دریافتید قسمت اگر رسیدی کاری برکوه نداره قسمتی از نماز رسیدی قبل از سلام به امام رسیدی دیگه اون جمعه رو دریافتی بخوام خب صحیح بده اون چیزی که از ابن مسعود شده یه نسه واضحه برای اینکه اگر کسی رکوع آخری نرسید نماز رو 4 رکعت به نیت ظهر رو مخالفی هم ندارم ابن مسعود کسی از صحابه باش مخالفش نکرده. یکی از مسائل بازم از احکامی که بحث متعلق به روز جمعه است اگر روز جمعه و روز در یک روز باشن آیا نماز جمعه ساقط میشه یا نه حنفی ها و مالکی ها میگن که عید سنت جمعه واجب حنفی ها و مالکی ها و هرچن که میگن اگر شخصی در نماز عید که سنت حضور پیدا کرد حضور در جمعه ازش ساقط میشه مگر برای امام امام برش واجبه که نماز جمعه هم بیاد این قول حنبلی هاست اینجا حدیث سنادش میکنن که رسول الله صلی علیه و سلم روز جمعه عید بود بعد گفت که قدشت معفی يومكم هذا عیدان در این روز دو تا عید جمع شده فمن شاء عيد من زجر جمعه و عيدون روزی که درش اون عید واقع شده الله نمیدونم عید فطر یا عید قربانه فمن شاء من الجمعه کسی خاص دیگه جمعه نیاد این کفایتش میکنه یعنی نماز عید کفایتش میکنه و ان مجمعون ان شاء الله ما جمعه رو خوین کلن اساسا جمعه رو میگه من میخونم هرچند که در مذهب شافعی ها الا نماز جمعه که واجبه نماز عید بین امام شافعی و اتباع شافعی اختلاف امام شافعی رحم الله میگه حضور در نماز عید و خود عید فرض عینه نماز عید حضور در آن فرض عینه ولی در مذب اون چیزی که ما میخونیم الا منهاج و غیر و قول نبوی که مشهور در مذهب یه سنته حضور در نماز عید سنته ولی قول خود امام شافعی که صاحب مذهب چیه فرض عینه هر شخصی باید حضور پیدا بکنه در نماز عید همونطور که فرض برش که در نماز جمعه هم شرکت بکنه. حالا یک اختلافی هست اینجا بر سر این روایتی که از عطا وارد شده که میگه ابن زبیر نماز میخونه صلا ابن زبیر فی یوم عید فی یوم جمعه اول النهار ثم روحنا الى جمعه. روز عید نماز میخونه روز جمعه بود بعد که ما رفتیم جمعه نماز عیدو بودیم بعد که جمعه رفتیم فلم یخرج الينا فصلينا فرادا درود فلسلینا وحدانا دیگه نیمد به ما بیرون نماز جمعه رو بخونه ما نماز تکی خوندیم شو کانی بگه؟ کسی که نماز عید خون نماز جمعه و ظهر ازش ساقته ولی صحيح بلی, بلی اینه که نماز جمعه با اون خودبهش از فرد ساقته ولی نماز ظهر ازش ساقت نیست و این اتفاق را ابن عبدالبر ده یاد میکنه و هرچند که نسبت این قول که نماز نخونده ضعیف میدونه یعنی رد میکنه ابن عبدالبر در کتاب تمهیدش هرچند که شوکانی بهش سناد میکنه ولی خب صحیح اینه یعنی که نماز جمعه برمأموم نمه امام فرضه ولی بر برمأموم اونجا دیگه سنته میتونه نماز را ظهر بخونه در اون روزی که عید در روز جمعه واقع شده و این گفتم دیگه نس حدیثه که رسول الله صلی وسلم رسول الله علیه و آله می‌فرماید چرا در سنن نبوی داوود حدیث صحیح قد اجتماع فی يومكم هذا عیدان فمن شاء اجزاءه من الجمعة کسی خاص این خطبه عید کفایتش میکنه از خطبه جمعه هر که رسول الله میگه و این نمجمعون ان شاء الله من جمعه را فهم خوب از جمله احکام روز جمعه کسی که وارد بشه مسجد امام خطبه می‌خونه باید بشینه یا باید دور کد نماز بخونه یا کسی که بدون وارد مسجد شود اذان داده میشه باید بشینه باید نمازشش سنتش رو بخونه تحیه مسجد یا باید از آن رو گوش بده این دو تا مسئله خیلی ها بهش آشنایی ندارن از حکمش از مسئله ای که از اون که وارد شده بهش آگاهی و اطلاعی ندارن مثلا اساسا در حال خطبه بود علیه الصلاه شخصی وارد میشه اساسا بر منبره میاد میشینه بعد بهش میگه نماز سنت خوندی میگه نه بعد اساس میگه بلند شو و نمازتو کوتاه بخون خلاصه خب بلندش میکنه در حین خطبه خودشو قط میکنه میگه نماز سنتتو بخون سنت چی تحیه مسجد این استدلال امام شافعی به این حدیثه که نماز تحیه مسجد واجبه پس اگر شخصی وارد مسجد شد شخصی وارد مسجد شد امام در حال خود بود به نسی این حدیث باید تحیه مسجدش رو بخونه بعد بنشینه ولی ها و مالکی ها میگن نه میگن باید بشینه چرا چون به جزی از نماز جمع است جای دو نماز ظهر نماز ظهر 4 رکعته دو رکعتش نماز دو رکعتش خطبه است به جای اون نمیشه نماز رو نماز خون این نماز داره برپا میشه مثلا حکم نماز داره خطبه بعد تو به دو نماز دیگه بخونی در نتیجه باید تو بشینی والله هم در قرآن گفته وید قران قران و فسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الله گفته اگر قرآن خونده شد تو باید گوش بدی اینجا هم البخاري بر سر منبر قرانم خونده میشه ما وظیفه مونو گوش دادنه نه که ما دور قد نماز بخونیم این خلاف امر الله و این خلاف اون چیزی هست که ما از باب قیاس میدونیم در در بحث خطبه که قیاس گرفته میشه بعد دور قد نماز حالا کدوم یک از این دو تا قول صحیحا قول حشفیها و حنبلی ها برای اینکه با دور قد نماز کنه قول حنفی ها و مالکی ها قول حنفی ها و مالکی ها اساسش چیه اساسش عموم عدلله است و و اگر قرآن خونده شد اگر کجا در خدبه هست در نماز کجا است منظور چیه باید شن نوزورش نگاه بکنیم کجا نازل شده این آیه در شن نماز اگر در نماز امام قرآن خون شما ساکت بشید گوش بدید این شنش نه در همه جا این یک این آیه عامه و اما قیاس در مقابل نس باطله وقتی که ما نس داریم راسو اساساً در حین خود به خودش قد می کنه میگه فلانی بلند شو آیا می ما قیاس بگیریم در صورتی که ما نصداری؟ نه قیاس بوده وقتی که ما نصداری راساً شخص بلند می‌کنه دوره قد نماز خوندین نگنند من نه بس بلند شو دوره قد نماز بخو. خب پس الان رساله خود ای که واجبه شنیدنش قد می کنه خطبه گشنیدنش واجبه قد میکنه. کنه برای دوره قد نمازا نماز تحیه مسجد واجبه واجب نیست واجبه واجب اگر سنت بود که نباید خطبه رو قد می کرد اون واجبه رو قد می کرد برای سنت درست یا نه؟ پس اینم واجب این صدا لکی امام شافیه رحم الله الان تو وارد مسجد شدی روز جمعه امام رفته بالای منبر اذان داده میشه شنیدن اذان سنته تحیه مسجد واجبه شنیدن خطبه هم واجبه تو الان تحیه مسجد را بخونی تا خطبه ای که واجبه را گوش بدی بهتره یا اینکه اذان را گوش بدی که سنت بعد درکات سنت تو بخونی در حین که امام خطبه میخونه کدوم یکی اولاتر تهی مسجد که واجبه سنت تحیه مسجد نید مسجد. مزده چون بر زبان خودمان چیه؟ سنت تحیه مزد نه واجب تحیه مزد این درکات را میخونی این سنت ازت فوت بشه ولی اون واجب ازت فوت نشه اون واجب چیه؟ شنیدن خطبه شنیدن خطبه حالا چرا شنیدن خطبه واجبه؟ چه حدیثی داریم در بحث وجوب شنیدن خطبه؟ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفرماید اذا قلت یوم الجمعه و الامام یخطب اما در اذا قلت له قص فقط لغوت دوچاره لغ شدی لغبی که با اون اجر جمعه را از دست میدی امام در حال به خدبه میکنه تو گفتی اص حرف زدن مباح حرف زدن اما من دارو حرف میزن جوی واجب میشه جوی مکروه اصل مباح در حین خدبه حرامه چرا حرامه؟ چون شنیدن خدبه واجبه چطور الان شخصی نشسته کنار من داره حرف میزنه یا اومده سلام میکنه حالا که بعض ما سلام را استثناء کردن و سلامات بعضی هم استثناء را انسان اصف الان اینه که احتیاج خب شخصی کنار من نشسته داره حرف میزنه منکری داره انجام میده. دیگه داره حرف میزنه من انکار این منکر بکنم با چی؟ با اس انکار منکر واجبه یا واجب نیست؟ واجبه اگر من این واجب را انجام بدم اینجا عجر جمعه را از دست میدم عجر جمعه را از دست میدم در مقابل شنیدن خطبه ای که واجبه یا سنت واجبتر تر از این کار منکر منه درسته شنیدن خطبه ای من پس واجبه که من از این واجبه اونم این کار منکر ازش نه شده. حتی گفتن اس ازش چه شدم من شدم اجازه ندارم حتی اس بگم که واجب این کار منکر یک منکری داره انجام میده در حین خطبه من اجازه ندارم بشن این بکنم پس شنیدن خطبه و گوشفرا دادن به اون واجبه. حالا کافیه که در شأنه در شعنش ما گفتید در بحث جمعه. تو از جمله غافلین میشی، تو از جمله منخفقین میشی. یعنی انسان قلبش بسی میشه، بلوم میشه. جمعه که حضورش به اون درک نمازش نیست، به حضور در اون موعزشه، در اون اعتبار و درسشه. جمعه برای اینه. حالا تو بیای روز جمعه خودتو مجبول بکنی. شهر آمده جلوه هر رو گرفته صد ذریعت کرده حرف نزن حتی اصح هم نبید. حتی این کار منکره که واجبه هم حق نداری اون داره اگر کار حرامی انجام میده در وقت خود به تو حق نداری جمعه خود را تلف بکنی به خاطر دیگری از خودت بزنی به خاطر دیگری تو در قبر خودت میخواد کن در قبر خود اینجا البته اینجا البته نه در همه جا امرو ما رو بنای منکر هست ولی اینجای ای شخصی که اعتبار نمیگیره درس نمیگیره و براش مهم نیست اینجا یک ای شخصی خودش را به غفلت و خواب زده تو دیگه مسئولش نیستی تو فکر عمل خودت باش به فکر درس و موعظه و اعتبار خودت باش اینجا بحث اینه نه اینکه ما مطلق بگیریم همه جا این مساقیت داشته باشه حدیثی که شافی ها و حنبلی ها هم کردن در سایه سلیقه تفوانی میاد روز جمعه رسول در هر خطبه میگه یا سليكو قم فرک و والتجوز فیهما و لا شود رکعت نماز بخون نماز کوتاه بخون خلاصه بکن و در روایت دیگه راساس هم میفرمایند اذا جاء احدکم يوم الجمعة الامام يخطب فليركع رکعتین وليتجوز فیهما اگر ما دقیقه کسی روز جمعه دو رکعت نماز بخونه ولی خفیف خب حالا بریم بحث سنت ها آیا جمعه سنت قبلی داره نه داره نماز ظهر گفتیم که وقت زواخته که خورشید میل میکنه از زواش وقتی نماز ظهر درسته وقت ظهر شروع میشه امامان بر روی منبره کی میخوام قبلی رو بخونیم چطور میخوام قبلیه رو بخونیم در صورتی که از آن میگه و امامان با خود رو شروع بکنه میگه میشه قبلیه خون قبلی وقتی که بین از آن اقام فاصله باشه چهارکت قبلی ظهر داریم وقتی که از آن گفته میشه وقت داخل میشه زوال بعد از اون وقتی داریم برای چارکت خوندن تا اقامه. ولی جمعه آیا وقت هست بناظاره قام نه از آن گفته میشه باید امام بر سر بر باشه کی میگه قبلیت رو بخونی پس جمعه چیزی به اسم قبلیه نداریم بعد نزد احناف یک مسئله هست میگن که نه ما قبلیه نداریم ولی سنت بعد از داریم جز قبلیه زور حسابش نمیکنیم میگن نه این سنت بعد از که رسول الله صلوات الله علیه و سلم میگه دوست داشتن دوست دارم الله مرا در این وقت در حال نماز بی مسئله خاص قبلیه ظهر ربطی به جمعه نداره جمعه مسئله دیگه جمعه شرع براش وقت این کرده که کی وقتش داخل میشه ما اون وقت اذان با اذان دادن وقتش داخل میشه و اون وقت وقتی نیست که ما فرصت داشته باشیم قبلی قبلی بخونیم وقت شاید مثلا اومدیم در وقت به وارد مسجد شدیم اونجا تحیه مسجد می‌خونیم نه بنیت قبلیه قبلی دیگه نداره ولی خب بعدیه داره بعدیه داره اونم دو داریم و که انشالله ما چون داریم که چار رکعت میگه که بعد از نماز جمعه میخون و همچنین رسول الله صلی الله علیه و در حدیث میفرمایند چرا که صحیح مسلم من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فلیصلی اربعه کسی اگر بعد از جمعه میخونه چار رکعت میخونه من کان فلی فلیصلی اربعه تاکید شده بر چار حالا یکی از علت‌ها شاید این باشه که رسول الله صلی الله در میفرمایند کسی از نافله خوند خانه و در بهش میشه و در در رکت دو رکت قبلی صبح دو رکت قبلی زهر دو رکت بعدی ظهر دو رکعت بعدی مغرب دو رکت بعدی عشاء اینها در و در روایتی دوازده رکت که اومده چار رکت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از اون این تفاوتش. خب اینجا وقتی که تو چار رکت خوندی اون در که تو برای قصری خانه در بهش ساخته میشه تو اون ده رکعت در رکت رو دریافتی خب پس تأکید شده بر خوندن نافله بعد از جمعه چار رکت تأکید شده بر این و تأکید شده که فاصله انداخته بشه نه تنها در روز جمعه بلکه غیر از جمعه همینطور که نماز به پی نماز دیگری خونده نشه وصل نشه صاحب امن یزید صاحب امن یزید رحمه الله میگه صلیتو نقل میکنه از معاویه که بهش میگه اذا صلیت الجمعه فلا تصل ها به ساله اگر نماز جمعه رو خوندی چون دید که این شد بعد از جمعه نماز. مو. بعد بهش میاد یادآوری میکنیم میگه میکنی صلله ای تجمعه فلا تصلها بهصل حالا گفتم هرچ که این حوق عام بر هر ازیه نماز جمعه رو خوندی و مثل نک بعدی حتی تتكلم نمه او تخررج تا اینکه حرف بزنه یا خارج بشی، یا بعضی روات آمده به جا توض بکنیم. بعد میاد میگه و این رااصله سروسلم اما را نه ببرید خصاصتون به این به ما دستیور دا داده. ال ن سال صلااعت هم به واس نکنی نمازی فرضی به نمازی دیگر. حتی نتکلما او خروج. تا اینکه حرف بزنیم یا خارج بشیم. حرف زدن اونو ذکرم آموزش میشه. یعنی تو نشستی. از کار جمعه تو گفتی. اشکال نداره. بعد از اون همون جا چیکار کنی؟ اون نافلت رو بخونی. هرچند که اولتره برای اینکه طبیعی نافلت در خونه بخونی. و رسول الله تأکید داره برای اینکه نافله در خونه خونده بشه. ولاتجه لو بیوتا کم خبره و خونه ها رو قابلشون قرار ندید. در خونه و منزلتون. سننات اونجا بخونید ولی اگر شخص خاص بخونه مشکلی نیست چونج اینجا معاویه رضی الله عنه هست و این تابعی بلند میشه و نماز میخونه و صحابه بودن که خوندن اشکال نداره ولی باید فاصله بندازه یا بازک یا با سخن گفتن یا با جا عوض کردن یا با جا عوض کردن که کسی فکر نکنه که این نماز را مثلا قبول نداره پشت این امام میخواد نماز رو بعد قبلا اینطوری بود دیگه جمعه رو میخونن همچنان هم هست بعضی از شافعی مذهبها اینطوری هم بعضی جا نماز جمعه که خونده شد دیگه بعد از اون ولالم میشه 4 رکعت نماز ظهر میخونم فکر میکنن که نماز ظهری که نماز غیر از نماز جمعه است نه اینطوری نیست یا نماز ظهر یا نماز جمعه هست. یا مسافری نماز تو میخونه یا نماز جمعه که جای نماز ظهر سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم صل على محمد محمد